یک ی ها شانزده داستان زیبا به قلم حمید رزا خزایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ماه بانو کلبا غیر. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود کچلی بود که نامش باغر بود و مردم بهش میگفتن کل باغر این آدم خیلی ترسو بود یه روز زنش از دستش ناراحت شد و اونو از خونه بیرون کرد و بهش گفت برو که دیگه بر نگردی ما یه همچین مردی که از همه چی به رو نمیخوایم کل باغری بیچاره که راهی براش نمونده بود سر به بیابون گذاشت و رفت رفت و رفت تا به لونه یک کپک رسید که پر از تخم بود تخما رو جمع کرد و گذاشت گوشه شالش و به راه افتاد همون جوری که داشت میرفت نگاه کردید از یه جایی دود داره میاد با خودش گفت برم ببینم اونجا چه خبره جلوتر رفتید چهل تا دیو دور یه آتیش نشستند سنگی رو بر می دارن و فشارش میدن. بعد سنگ تبدیل به آرد میشن. شن کلب ترسید و خواست برگرده اما دیوا دیده بودنش و با خودش گفت اگه من فرار کنم منو می گیرن و یه لغمه چپم می کنن برای همین خودشو رو از تکوتا ننداخت و جلو رفت و گفت ببینم چیکار می کنی؟ سنگ نرم می کنی؟ دیوان نگاهی به قدباله کوتاه کلباغر اینداختن و گفتن اگه میتونی تو هم نرم کن. کلباغر دو تا تخم کپکو توی مشتش گرفت و خم شد انگار که داره یه سنگ رو از زمین بر داره و همینطور که تخور تو دستش فشار میداد آب از لایه انگوشتاش بیرون زد. به دیوان گفت نگاه کنید آب میچکه من سنگ رو آب میکنم. دیوا ترسیدن رو با خودشون گفتن چقدر این صاحب بنیه و قوته چقدر این آدم میتونه قوی باشه که سنگ آب کنه با هم مشورت کردن و گفتن بهتر اونو پیش خودمون نگرش داریم به کلب گفتن ببین ما چهل تا برادر بودیم یکی از ماها مرد حالا تا بیا بشو برادر چهلام ما و پیش ما بمون کلب که چاره نداشت و باید قبول میکرد گفت خیلی خوب کلباغر اونجا موند و موندگار شد تا ببینه که خدا براش چی میخواد فردا صبح رفتن به میدون ورزش که با گرز ورزش کنن دیوا گرزشون رو سه خروار میداختن بالا حالا نوبت کلباغر رسیده بود دیدن که کلباغر حلقه گرزو گرفته تو دستشو به آسمون نگاه میکنه. ازش پرسیدن میخوای چی کار کنی برادر؟ کلباغر گفت اون زمانا خدا بیومرز بابام با بابا بابای شما تو همین میدون ورزش میکرد. بابای خدا بیومرزم گرزش رو به هوا اینداخت و گرز به زمین نیومد. حالا نمیدونم تو آسمون اون بالها کجاها گیر کرده. برای همین دارم فکر میکنم، گرزمو رو پرد بکنم که بره بخوره به اون گرز و اونو بندازه پایین یا نه ممکنه گرز منم برو همون بالا بمونه. دیوا با خودشون گفتن ای بابا این دیگه که گفتن ببین نه نه اصلا این کارو نکن. ما همین یه دونه گرز داریم برادر. ولیشکا اصلا نمیخواد گرز به هوا بندازی و اونو از دستش گرفتن. جالبه که کلباغر حتی حلقه گرزم نمیتونست تکون بده چه برسه به اینکه به هوا بندازش خلاصه دیوا هر روز نوبتی باید خمیر درست میکردن یه نفر باید آب میاورد یه نفر هیزم نوبت به کلباغر که رسید کلباغر چاغو رو برداشت و سر های آرد رو پاره کرد حالا پاره نکن کی پاره کن یکی دو تا سه تا دیدن میخواد سر همه رو پاره بکنه گفتن که چیکار میکنی برادر چرا همه کیسای آرد رو پاره میکنی که الباقی گفت میخوام همه آردار رو تو حوز بریزم و یه باره همه رو خمیر کنم بهش گفتن نه بابا ولش کن نمیخواد ما خودمو خمیر میکنم برو نمیخواد حالا نوبت به اوردن آب رسید دیوا تو پوست گاو آب آوردن دیدن که کل و غیر همه پوستا رو رو پشتشین گرفته و میخواد بره به سمت آب. ازش پرسیدن چیکار کار بکنی؟ برو یه پوست آب بکن. ما تو یه پوست آب میاریم. گفت من نمیتونم ننگم میشه یه پوست آب بیارم. دیوا گفتن برو هر کار دلت میخواد بکن. کل پوستا رو برد سر چشمه و تو همه پوستا تو هر کدوم یه کمی آب ریخت و بقیه رو از باد پر کرد. پوستا رو به پشتش گرفت و را افتاد. یه خورده که مونده بود برسه به خونه داد و بیداد کرد که های بای بیایید کمک کمک تا دیوا به خودشون به و بیان کمکش تمام پوستا رو به زمین کپید و همون یه ذره آبی که تو اونا بود به زمین ریخت دیوار رسیدن و کلباغه بیشتر داد و بیداد کرد داد زد و گفت انگار گوشاتون سنگین شده کر شدین برای چی جواب نمیدین؟ دیوا گفتن برادر صداتون نشنیدیم کلباغه گفت این همه دارم صداتون میزنم دیوار پرسیدن حالا برای چی آبار ریختی؟ کلباغه گفت کار خوبی کردم حالا که گوشاتون کر شده به جای آب بیاد مرگ بخورید. دیوا گفتن بیا بشین نمیخواد آب بیاری. حالا نوبت بهوردن هیزوم رسید. دیدن یه تنابی رو برداشته و دور درختای باغ میپیچه. ازش پرسیدن برادر میخوای چیکار کنی؟ کلباغر گفت میخوام یه که همه درخت‌ها رو با همدیگه دیگه بکنم. اونا دیگه به دستش چسبیدن و گفتن والا غیرتن نکنین کارو این درختا ها درختهای میوه هستن یه عمر پاشون زحمت کشیدیم تا به بارنشستن دیوا وقتی که تنها شدن با خودشون مشورت کردند و گفتن که یه آدم با این همه زور و قوه اگه بلای سر ما بیاره چکار کنیم؟ حالا که زوده بزار بیرونش کنیم از اینجا بلنشدند و رفتن پیش کلباغر رو گفتند برادر بیا ما از سهم پدریمون یک چهلوم رو به تو میدیم و تو برگرد برو سر خونه زندگی خودت کلباغر گفت حالا که شما میگین من چی بگم باش اونا هم اومدن و یک چهلوم از سهم پدریشون رو به کلباغر دادن و کلباغرم بار قطار کرد و قطار شطرها رو به راه انداخت و برگشت به سر خونه و زندگیش همون روز اول به زنش گفت ببین زن این مال ثروتی که من اوردم مال چل تا دیوه حالا امروز نیان فردا میان دنبالش برو هرچی سطل است جمع بکن و بیار تا بهت بگم چیکار کن زن رفت و همه سطح های حلبی رو جمع کرد و کل باغر همه رو با تنا به هم بست. سطح های که به هم بسته شد شدن انقده یه تپه و اونا رو گوشه باغ گذاشتن. کل باغر به زنش گفت وقت دیوا اومدن و گفتم که سنگ نیم سیر بابمو بیار اینا رو میکشی و با خودت میاری. چند وقتی که گذشت دیوا پشیمون شدن و با خودشون گفتن اصلا برای چی باید یک چلو مال پدریمون رو به یه آدم میزاد بدیم بریم و مال پدری رو پس بگیریم اومدن و به در خونه ی کلباغ رسیدن کلباغه رفت رو پشت و داد زد و گفت چیکار داریم؟ دیوا گفتند، اومدیم دنبال مال پدریمون کلباغه رسداشو بلند کرد و گفت آهای زن اون سنگ نیم سیر بیار تا ببینم اینا چی میگن دیوا دیدن زن کلباغیر یه پشت رو روی زمین میکشه و با خودش میاره گفتن اگه این سنگ سنگ نیم سیر باباشه خدا رحم کنه به سنگ یکمن باباش از ترس پا به فرار گذاشتن و دیگه بر با و کلباغیر روی پشت بوم میخندید می و میخندید